<تصفيق> مگه الان مثلا ما صد هزار چنان اینقدر مسابه اسلام داریم یکیش رو بگیریم صد سال بعد بگیم که این اسلام در تاریخش این بوده است نمیشه که این مکتبه من شما اجازه نمیدید الان برم مکتب فکریست مکتب فکریست. فکریست که آقا شما نمیتونید بر این پاسخ بیاری تو ابد تو هزار سال دیگه زورتون نخواهد بندهش, هست. مت اتفاقا مت بندهش هم براتون است متن بندهش هست که میگه این خصوص انسان است وسط. این مز... این تفکر مذهبی یک فرقه ای بوده اصلا چیزی نیست دست به اسلام هم اینا همچین تفکری داشتن با ادامه همون فرقه است این فرق فکر فکر در ایران... ببینید که پادشاه گردن اینا کجا شروع شد برای این مز یسنا ایزد... به هیچ عنوان مز یسنا به هیچ عنوان مز یسنا برای یشتام من آوردمه با پاچو هستن کوی خلاص من خدمت کنم. من گفتم من مطمئنم که یهو به بفهم این شما بریدون وسط حرف هم دیگه من الان بعد موضوع در هم اونجا تحلیل اج... اجدار میشه اجدار گم کرده من خودم اول حرفم بزنم بعد... از اول اول دم صحبت بکنن ایشون. اگه شما دلیل برایشون داشتم کیومرس کیومرس بس... که وسطش دارین بعد میگن آقا من کردم نه اصلا اون بحثی که درماده اجداخت میخواستیم خیلی مخواهیم قبلش برسیم یک اینکه که اینا نماد داره بودن از زمان هم یونان داشته هم تورات داشته هم ساسانی ها داشتن هم قبلتر از اون بوده این نیست که بگیم اقا مال امروز بوده یک تمام این ما بیایم اینا رو ول کنیم بچسبیم به آقای تبری همین آقای تبری برمیاره میگیم آق یه در آگا... یهشتن پادشاه هم پلوان پاد... انسانه. پادشاه هن در قاطا جمع شد انسانه. د... نماد اتفاقم. نیست. اتفاقا من برای شما هفته با ثابت خواهم کرد. با زبان شناسی هر کدوم دوست داشتین میتونید ای بگویند. شرایطی نداره ثابت بشه هر مورد کاملی کنی. این آقا شما میگید پادشاهه آقای زرتشت ایشونو حتی به من هم حساب نکردید نگفتم پادشاهه انسانه درگاه با... در تا انسانه به من یک انسان ثابت حساب اتفاقا ثابت میکنیم به شما ما به شما ثابت خواهیم کرد که در اونجا اگر من وندیدا رو قبول کنم پادشاه، شاید یه روزی قبول بکنم ولی به شما اثبات خواهم که, که بنده من هفته پیش با آقا هم با دکتر حسن دوست مشورت کردم اون آقا بگه این سلیقه‌ای دکتر سلیغه اینا سلیغه ها دوستان سلی... در متن باستانیکو هم دست ببرن به سلیغه دوانین خودشون دوانین ما پنج جلد کتاب داریم در زبان هندو اروپایی اومده دستور زبان اینا رو تطبیق تز... داریم من خیلی منظر میخوام در ق... علوم و آزمایشگاهی و چیز هم اینقدر دقیق صحبت نمی که در زبان دران اصلا دقیق اصلا برای من علوم پایی اصلا قابل قبول نیست این قابل قبوله نمیشه اینقدر محکم گفته علوم انسانی زبان شناسی علوم انسانی است چطور میشه اینقدر مگه یه فرمولی دو دو تا, تا داره چطور مثلا یاشو زبان انسانی نمیشه من یاشو من ژنتیکه نا یاشو به عنوان ترجمه اش میگه انسانم پادشاه اصلا پادشا کلام پادشاه خشای ریشه خشای که ریشه هندورپاش که سایه آقا اینا اصلا کلام پادشاه این نبوده که امروز معنی شاه پیدا کرد نا کوی گفته لوهرس در نهایت کوی داره هم من یک کوی هم مع... اصلا من شیخو با... اصلا کوی داره وقتی ما میگیم آقا زبان شناسی خیلی دختیه. ما چلی یکی کتاب معرفی کردیم حالا شاه با... نیستن دهات پنه با... با... با... با... فرقی نمی کنه این چلی یک کتاب اگر شما چهار سال وقت میخواد، اینو بخونی تازه اول زبان شناسیت چهار سال وقت میخواد؟ بله از این صحبت اولم دیگم با... هست من خب... یادم فیزیولوژی فیزیولوژیو هشت واید پاس کردیم یارو گفت از اولشت شکایت نمی دخالت دقالت نمی آقا اگر ما به عنوان کارشناس زمارشات قبول دارید که هیچ اگر حق ندارید... کارشناس زبان شناسی حق نداره در متن دستور برای تحریف کردن به سلیقه خودش تحریف چیه ما داریم میگیم انگار آقا... ما... کاغذ انداخن تو بوتی آزمایش است مش نماد در من این حرفن این, این. بازیست... این خیلی زشته این بازی است که در... آقا اینها هرگز شاه نبودن نمیشه وقتی واژه کوی اومده دهات که بوده یه چیزی بوده حاکمی بوده حاکم یه معنی کوی یعنی چی معنی کوی شما من به شما میتونم امروز به بدم دوستان برام بخونن من کتاب دکتر جلالی ناینی من چه همه اینا رو معرفی کردم که تو ادبیات هست. اینا معنی کلمه دیدنه، دیدن و شنیدن. که ازش بعدن کنی یکاوی چیه؟ دیدبان میشه؟ به هیچ بله. خب خد دیدبان باشین الان باز از انسانیت اینا رو صحبت به... کرد به نظر شما ننداخ که. به هیچ عنوان ما شاه در زبان‌های باستانی ما هنوت کلمه بان داره. هیچ... پاسدار آدمه اجازه بدید در زبان‌های باستانی هر کلمه کلمه‌ای منم که تو معنویات به دوستا معرفی کردم. که نگاه نکردن مطمئنم سرفصلاش هم نیگ نکردن حتی سروت هم می زنن خب این پس او و همین گیر ولی ما نگیر نکردیم ببین کید تمرس با ا... انسان... کیه ها می جنگت انسان های اولیه هرگز کلمه شاه برای این شکل مدل ما نگفتیم این گزارش متأخر است یک, یک. نداشتن دو این به خاطر فر ایزدی بود که میخواستن نسبت بدن به بیارنشون اینار رو یه دوه هزی هست نه نه ثابت ما نساز نشود که بگین حتما انگار ما دوربین داشتیم ساسانی نشسته تلاش می کردن که فلان کارو بکنه ش... شما چطور وقتی تو گیر میکنید میاد میکوبید هر چی کم میارید میندازید گردن من دیگه من اونجا دخالت نمی میخواد وارد می من نمیخواستم بگم الان شما می میکوبید اردشیر بابکانا من تازه خواستم نگا کنم من که متن میخواستم... مسعودی رو من, برای برای مسعودیو من دارم مسعودی چیه مسعودی از کجا میدونسه ما کاری نداریم من این متن رو دارم خب هر وقت متنش پیدا شد که ساسانیان رفتن پادشاه سازی کردن که کفی فلان بود و شاهش کردن اون موقع میتونیم صحبت کنیم نداریم متن اون مقاله متن رشید بابکان هست که مسئول نویسنده این رفه دستبرد سال‌ها رو کشیده مبرق است که اینو نوشته کتابش رو برای شما میارم آخرین کتابی که شما ازش استفاده کردید از تشظیم بودام چه چی بود اصلا, اصلا تنبیه و شما... لشا خوشم اسماشونه بیارم از این بهتره کتاب رو 23 می کنم همین کتابو شما بیارید ما این سلیقه است عرض کردم این سلیقه با همین کتاب با همین کتاب کوروشو برای شما رد خواهم کرد بله مثلا کار کردم روی این قضیه لجنداری در کتاب در مروج الذهبش رو درست شما کرده درست شما فکر می‌کنید چرا ببینید من با خانم ویدا شوابی رو صحبت می‌کردم ایشون تو واشواسی استاد دیدم مثلا ایران گفتیم ما داریم یه کاری میکنیم ما الان می‌فهمم واقعا راست می‌گفتن گفتیم آقا ما داریم می‌کنیم تاریخ ایران رو در بیاریم بیاری که بیاری بیاری بیاری بیاری بیاری بیاری کار کنیم از دست اروپا یاد بیاریم گفت دور خدای کار نکنید گفتیم چرا گفت اگه دست شما باشه باز یه چیزاییش می‌مونه دست خودم هم داغون میشه میره من دازه دارم میفهمم که چه حرفا قشنگ باستان سال پیش چی می ما 100 سال دنیا عقب می خوام 100 سال دنیا اصلا هم چیزی نیست اصلا هم چیزی نیست ببین تو کاره هم دخالات میکنیم بدونی که اینکه اصلا احترام بذارین به طرف مقابلت نه احنا. آخه ببینید تو کار نیست ما یه پای پایای سل... زبان ها شناسی خوندید اصلا بحث شما این نیست. اجازه دادید من اصلا هم حرفم هم درگیری شده ما یه پایه ما یه پای اینجا آقای همین الان میگن آقا 3000 صدا داریم ترجمه می‌کنیم هنوزش گیرین هشت ترجمه فارسی که داریم که و چند ترجمه انگلیسی در همین جنبش انسان کجای انسانه من برای شما ثابت می‌کنم همین که طب... اصلا انسان اصلاً نبوده اصلا رو بیارید اینا تا اینجا سلیقه و حرف بود اصلاً, اصلاً بحث نیست همین که شما من گفتم گفتم آقا جان من نمی‌خوام یه صحبتایی بکنم یعنی که نمی‌خوام نمی‌خوام که نمی‌شه که ببین الان تورات جلوی منه پادشاه توراتیه پادشاه از بیرونی تا خور کتاب پی... تاریخ یک تواریخ بزاحت... یک. یک آقای بیرونی به شما بهتون قول میدم آقای بیرونی چقدر دقیق گفته یک. اندازه یک گفت. ترم بچه‌ای زبانشناسی زبانشناسی بلد نبوده زبان‌شناس نبوده کسی که آقا کسی که زبان‌شناس نیست چطوری خودسرش‌شناسی کنه اصلا اص... کی گفت این اسوره اینا بچه‌است باز ذوق ما داریم اول اثبات بشه هست. این اسوره است این آدمای گنگ بشن اسوره بعد اینا آدمای گنگن ببخشید من همین مثالو می‌زنم آقا این پول جیب منه شما میگی نیست این شماهایی که کنی نیست اینجوری بخواد حالا بعد بله. اهرام اونجا بیفته نه اگه اینجوری بخواد بله ما سلیقه دکتر کیرک و پروفسور بارنارد نمیتونیم به کنیم. کن پروفسور شده چه پروفسور بارنارد شو رفع عمل اگه قلب انجام داد قلبو تئوری نموند اینا میدونید اینا سلیقه نبود این عمل شد اینا اثبات شما شد بشن... اثباتو بعد ما در علوم كتابه... انسانه گل کنم من بهشون گفتم میگم شما کتابا اینا رو ورقم نذدید من زبان شناسی خب ولی زبان شناس داره میاد حرف نزده. انکار میکنه سند رو انکارش میخواد درسته میگه سندش درسته وقتی داره میگه آقا ما فعلی سلیقش داره انکار میکنه اصلا هم چیزی نیست فرمول نمی کنه آقا... رو شاهد نمی کنه فرمول نمی اینا هم من هزاران بار گفتم آقا سنده های زبان شناسی فقط برای ایران نیست موتوس اسکاندیناوی پیدا کردیم ما میدونیم زبانای هندو و اروپایی اون دست روزون اولیش چه جوری بوده ما میدونیم گردش مصوت ها چیست. نه این کار انکار نکنه قضیه ما میدونیم وقتی اون فعلی که اوستاداره به کار میمره در مورد جمشید داره کاملا ثابت میکنه که آقای است جمشید باوال کی داره یعنی ما اگر با این سیستم بیایم اینجا رو پاشا روزگار زرتش اون که کی نبوده و دیده بامبول بوده و طبیعت بوده و فلان بوده اصلا نمیتونیم ما این کارو کنیم زرتشت کی بک از... کی بودین یادتن کفیش بس چیه چوی اصلا به شما من دا دارم همین دارم میگم پیشدادیان چرا کیری نداره چرا کی فریدون کی تنها پیشدلیه که کی داره ف... کی فریدون کجا کی... دو... با... من... اومده من تو کون راستش من بهت میارم تنها پاچه پیشدلیه که کی داره فریدونه اصلا پیشدای چرا هست فریدون معروفه کی فریدون معروفه فکر کنم من میارم اینو در جای خونه میارمیش از اول این استور شناسی به این شکل از زمان یونانی بوده داستان خدایان نه در همه جا در زمان اصلا به عنوان نیست من اصلا واسه این منطقه میخوام آقا محمد ابن حسن قمی 304 هجری یعنی هزار سال پیش هزار سال پیش نه 3 سال 200 سال پیش ده سال 20 سال پیش که هایسان فیروز میگن میاد در تاریخ قوم از ابن مقفه ابن مقفه یکی از معتبرترین کسایی که همین ابن که خطشون نوشی که هایسان فیروز جز... از تو جاسوس یا از ابن مقفه که اسم هفت خط آورده الفرس ابن ندیم یه قاسان ما میدونیم که آقا که معنی که و يغه به خاطر حالت اقتصادی بودن که وغه میتونن به وقعه تبدیل بشن یه قاسان پسر خراسان بودن قاسان, قاسان یه منطقه‌ای تو ماوراءالنهر درود بر شما اینقدر ما از این روایات داریم خب بذارید یه روایت بخونم بذارید بذارید بذارید واس بخونم بذارید روایت های روایت توری میخونید بخونید. من اینا اینا بخونم حالا آگه... بخونید من قاصد نمونید حالا... قاصد یه جمله دیگه بگم آلمانی من. که قبول دانشوند انسان آلمانی که قبول ندارید مال بله فردوسی و من خواستم شعرشو بخونم که اجازه ندادید برای ابن مسعودی رو خواستم بخونم که ببینید فرق ابن مسعودی با ب... ب... ب... با شما ببینید اصلا مثل روایت بس شما بخونید بله مثلا جیان میمونه با شاتور فضایی از لازم داره در یک مورد باشن تو همون یه موردی که ما کار داریم می‌آقا من میگه قاسان پسران خراسان بودن قاسان اکبر پسر زهاک چقدر قشنگ داره توضیح میده حالا من بهتون میگم بعداً یعنی چی و قاسان اسقر پسر فریدون است اینو آخه دکتر درخشانی شما داشت که آورده و میگه از این مددر میایم میگه قاسان اسمش قوم ها داره قشنگ براتون توضیح میده از این کلمی درمیایم من میشه به یعنی سلیقه نه اخه قاسان اکبر پسر زهاک ما میدونیم که آقا کاسی ها 576 سال تو بین النهرین حکومت کردند و یکیشون شم... و جالب اینجاست که 576 است و فریدون 500 است باز چه ارتباطی بین دو تا است آقا من دارم میگم آقا قوم کاسی ها اسم فریدن اسم پسر آورده ولی پسر نیست اسم یه قومه الان کاسی اینا. ها رو گفته آقا پسر زهاک زهاک اصلا شما برید بخونید تو کدو وسط الان شما بخونید ببین تو کدوم متن میبینید که اسم پسر الان قاسم بشه کاسی الان قاسم بشه کاسی دیگه اینو میخوان بگین بر... زهاکی میشه که ببینید اومده میگه آقا در بابل ببینید اون چجوری بگه الان یک دو تا اسم مشابه گرفتن یکی اصلا واژه‌ای که مثلا عربی شده تلفظ عرب... عربی شده از یک واژه‌ی ناآشنا بانک 104 هجری داره نوشته میشه در یکی از روایات زهاد به من این بیام... آه... سال لازم ما امسال ف... اصلا این 50 سال فهمیدون که آسی چقدر حکومت میکنه همه ای... پادشاه شون چی... اصلا با یکی از روایات فریدونی که میگن 500 سال کرده آقا من به شما ثابت میکنم که چتیبه فریدون چطیبه... من برای شما ثابت می‌کنم کتیب اکدی میارم هفته بعد. بسیار عالیه این. کاتب اکدی واسهتون ثابت خواهم کرد که آقا کیکاوس و چشواد مازاد می‌خوام این ها هیچ کس نیستن جز های کاسی اسم پادشاه‌هاشونن خب برای خیلی خوبه اگه بیاد من استقبال می‌کنه. و برای همیشه این قضیه خط خورده. ما این خود. که خیلی مطلق گوییه. دیگه. ولی خب میگم اگر اینجوری بخواد پیش من واقعا نمیتونم ادا بدم. مو قرار شد مثلا شما ژنتیک شما ساعت می‌گید مثلا نه پار نمیدونم نخوندم نمی‌دونم ببینید این خیلی تخصصی من واقعا درک می‌کنم که طرف می‌فاد اثبات سلیقه شو بکنه دیلم داخل زیر اسناد اینو من نمی‌تونم بررسی بدم به شخص خودم یعنی من اینکه من مثلا گه... یک کتاب من... از این که تذین من رو... برم به زمان من میگم آقا طوری من گفته آقا عجی یعنی تیکه گوشت بعد بهم به نمیخندم میگه واسه اصلا اشیره شما... به تیکه گوش نگفت نه, نه, نه اصلا معنی نکرد اون در واقع بردايش برداشت برداشت گفته که دو تا چیز برآمدگی وجود داشت اینا مار نبودن اینا چه حقیقت اصلا اسمش نشه برآمدگی ما جوش کلمه برآمدگی کلمه مار اصلا مار ترجمه نکرد اصلا کلمه مار رو ترجمه نکرد این ادم این این دو تا واقعه رو تفسیر کرده اصلا زبان شناسی کار نکردیم ادم خب بلد نیست شما چطور میتونید زهاک رو بیاری بدونید بیاری بررسی کنی میگی زبان شناسی بده این گفته دو چیز اینجا بودن این دو به تا بوده توجیه ما پزشکی اینه ما امروز تو... داریم. ما دیگه. دیگه داریم ما در جاهای دیگه اینو داریم ما در جاهای دیگه اینو دارین این... بر... که بعضی میگفتن که روزی دی... هواهوانی دیگه این دقیقا شاهده ببینید ما این در فرهنگ‌های دیگه هم داریم که امروزه میگن که فلان فرد اگر میشلیده و مثلا اینو به عنوان خدایی میدونستن ازش نه این فلج اطفال داشته اصلا این چه رفت اینو میدونن الفارقه این آقای چیز با توضیحات آقا پزشکی, پزشکی ما پنج مدل ش... پنج یا شش مدل اسپورت از پزشکی تو اوستا از حتی مانستر بایش ازم میاد از پزشک روانشناس صحبت میکنه یعنی تو این حد پیشفته بوده که تاخیر اوما... به ما, رسیدن. متأخر ما رسیده داستان ها عوام به دست ما... میگن که ارمایل و گرمایل که فرار کردن آشپزای اینا بودن دیگه اون فراری این اون آدمای فراری اوسا صحبت میکنیم کنیم چیز... برای قرطا شدن اوسا اومده بیماری پوست سر اس برده از بیماری جوش دومن چ... از دومل چرکی اس برده اون وقت دومل چرکی اینو کرده اجدها اون داستان روایی داستان امیانه متفلس عنوبانی آم... نیست یعنی پوزش ما م... ما بابلی هایی داریم که منجریان این همانی باطله نه باطل نیست این همانی این باطله در باستان شناسی هست این همانی باطله ببینید ما مثلا باستان شناسی ما رو ببین بدبختی انداخته شما نیا نیاکان... کنید بیت کتاباتم باستان شناسا رو بخونید من به شما میگم همین همش بیت کتاب تویاکونو رو بخونید این آقا باستان شناسه ولی بالای 80 درصد کاری زبان شناسیه همه خود باسن شناسا می که آقا حرف اول و آخر زبان شناسی می میزنه خدای آقا جام شو درخشون دیلم نباد بنسن آقای... من آید دکتر قبول داریدم اصلا اسناد رو نباید همه یعنی... اسناد با زبان شناسی اینا رو ذلیل میکنه اصلا نوع نگشت به طبری اشتباه بود فکر می فکر میشون فهم می کنن که ما رو می ترجمه که به قد اصلا این حرکت رو انجام نداده زبان شناسی عمل نکرده دخل... یک رویدادیو شوار... من تو ذهن آقا... خودش تفصیل کرد. اصلا این قیاس سنجش به دور و قیاس ما بود آقا من دارم میگم سکر پیدا شده سکر از, یه فرقه از هر فرقه ای آقا این دردی نشون میده فرقه فرقه برنده ای بوده که سکه تو ضرب کرده یه فرقه حاکمیت ساسانی بله حاکمیت ساسانی ساسانی نیومده ساسانی اتفاقا دوستش برای گارش شاه دو... درست کنه که بیاد بگه آقا من دودمانم ات... از شاه بوده اینه باز شما سلیقه‌ای چی چی سلیقه‌ای آقا, سلیغی سلیغی آقا, آقا. این صحبته من پدر بزرگم که شاه بود میمون بود اصلا صحبت از این قضیه اینا کیومرث و در دوران ساسانی به خط پهلوی حاکمیت قالب کیومرث رو کس انسان میدونسه چون با... متونم هم همینه متنش متون گم شده مون که به اسلامی رسیده کیو مسوچ شاه آقا شاه به هیچ عنوان اینا نبودند متون بایتن... میگن بودن متون ماش که کمی شاه شده اشتر ترجمه میکنه آقا معنی شناسی داره معنی شناسی حرف اول کبی... من... چی میشه تو اوستازه بشتاش چی میشه من... اجازه بدید اجازه این سوال دیگه کبی اصلا کبی بعد ها معنی پادشاه گرفته این بحثا کی بوده این بحثا ما نمیتونیم تشخیص بدیم رفتی؟ فقط میتونیم تشخیص قبل بدیم بوده نه نه نه به هیچ عنوان یعنی هیچ عنوان به هیچ عنوان ببینید اصلا شما یه من... میخواد توضیح شوان... میخواد آقا اصلا فخردوسی داریم میگه ما ز... سلیقه‌ای نمیتونیم که زمانه... قبل از گشتاس بوده آقا طرف لباس زین نگاراش از لباس آقا این پردهشت ساسانی است هزاره شیشمه پیش از میلاد یا لباس تنشیست لخت هونه نه ما لباس های تر از این هم داریم بله بله به همه جای ایران شما تو همون شهرهایی که میگی تو همون خمین برید ببینید, ببینید چقدر سنگنگار هست همه لخت و پتی هم, هم زنش اون... هم مردش سلیغ بافی اون زمان اینا پادشاهی داشته بابا بله. که تو اصفهان اینا بودن ما برای تو اصفهان داریم تپه داریم کوه با... اون ترکیه است من قراره میشه هرچی اونجا پیدا شد همه جا من میخوام بشر رو بهتون بگم اگه هر جایی که اگر لخ بوده, بوده، نمیشه بغلشان لخت باشه من دارم میگم در خمین بزرگترین سنگ نگاره های ایران دیدم. در خمین من اونو دیدمش بله هم من میگم اون مراسم سنتی انسان های که هیچ ارتباطی به بحث ما نداره یعنی همین علانش ما میشنویم که ادعای داشتن که مراسم داشتن که لخت بیفتن دنبال گوسوند ما نمی‌دیم مراسم چی بوده شاید در اون مراسم لخت بودن شاید اون دوم... جمعیت لخت بودن ربطی به قضیه ما نداره اصلا کی هیچ اینا... ربطی به قضیه مثلا اصلا, ها... اصلا خود فیادوسی... در همین حاکمیت ساسانی متأخر با جمعیت‌های اصلا گنزنفون خدمتون بگم گنزنفون از پاچه‌ی اخوامنشیده عبور میکنه. یک جمعیت وحشی دو کو سرش بس ما بگیم همه اخواننش اینجوری بودن؟ این سفت است ببینید دیگه میدم... می... ببین ببین شما داره میگی چون مثلا مراسم لوخطبتی یه جا هست به شما بس این همه لفت رو مغها به این نتیجه رسیده بودن این سند نداره به این نتیجه رسیده بودن این ما ما رو اثبات خواهیم کرد به این نتیجه رسیده بودن نتیجه‌اشونو آوردم تو اوستا اون اصلیه به دست ما است در ساخته داستان این نبوده ابن مسکیه برای مسلمان وضع های اشتباه می خونم من. مسلمان بوده دیگه طبعا. پس این دید یک نه یونانیه نه میارودونه که اصلا تعتیله اصلا نمیتونیم بگیم میگیم شما نمیدونی حرف بزنید میارودونی این این حرف میارودونی نیست چون ما میدونیم که آقا میارودونی انسان شناسیش چه شکلی بود حالا چی گفتن <تصفح> میاد ابن مسکیه چی میگه میگه آموزش گوهرهای نخستین که همون که ما بهش هاش نمیگم چقدرش درسته چقدرش اشتباه این ولی چقدرش به علم امروزه. شا 70 تا 60 اینجاست این گوهرهای نخستین نخوستین منظورش چیه این چهار که ما میگیم آب و آتش و خاک و باد آموزش گوهرهای نخستین پسترین نماد زندگی را که سنگ و خاک و فلز است پدید آورد سپس هنگام برتر دگردسی این اینا رو استادونیتی اومده فارسی دری کاملا فارسی, فارسی وارش کرده مثلا دگردسی یعنی تبدیل در گردش فرار رسید و جهان گیاهی پدیدار شد یعنی داره میگه اول چیزی که در مده گیاه بوده ما قبل از این هم داشتیم نخوش سبزیه نخوش سبزیه خدرو و آنگا بوته درختان گوناگون که دارای برخی ویژگای جانوری هستن داره میگه آقا گیاه ها یه جایی رشد میکنن بعد یه جایی میشن بین جاوا یه صفاتای بین جانور و انسان پیدا میکنن گیاه ها ابن نفسی بود نفیسی بود نف... اونم اونم نصفی نصفی نصف. باید باید باید فعلیه نیست هستم و از این رو مرز جهان جانوری به شمار میروند چرا قشنگ داره توضیح میدهیم یا گیاه ها یواش در این خاصیتهای جانوری تولید می‌کنن اینجا میشه مرز جانوری به شمار میروند نمادی از زندگی است که نه جانوری است و نه گیاهی ارتباط موضوعی مانند, مانند مرجان و از ویجیگای هر دو به همر توضیح میده تا میرسه و میگه سپس هنگام برتر که از هوش روزافزون بهره دارند دست, بله دست, دست می مرز میانجی مردمان زندگی میمونی است اینم ارتباط ارتباطش, اید. اید. ارتباطش اید. اینه که آقا اونها میدونستند که آقا انسان کیومرسی که ما داریم میگیم آقا انسانی بودی که تکامل پیدا کرده و رسیده به این شکل اینا هم فهمیده بودند یعنی اصلا در این از نی... نه نه نه. در, نه نه. در اون فرق نخست انسان کیومرس شد انسان های صدر اسلام هنوز بعد از مغول می روزید از کتاب بعد از مغول دیگه به این رفت که ما شما ببینید اصلا بعد از حمله مغول ما دیگه هیچی نداریم صدر اسلام باز کلی دانشمند داریم ولی بعد از حمله مغول دیگه اصلا کلا دیگه ما ببینید وقت برنامه رو به برست. پایان هستم بوده و دین ما تو برنامه برابری فکر کنم صحبت کردیم که اصلا تمام اون های داروی رو قبلا گفته بود بلید هشتر پراکنه داره عبستا و بندهش داریم این رو بلده. بلده. بلده. من دارم میگم آقا این سگ. هست این موضوعش ارتباط به قصد ما نداشت شنجد. ما الان ببینید در باستان شناسی میگن مینی یا منس را شده منوی هندوها مثلا اصلا... یک فرعون رو تعمیم دادن به یک مثلا شخصیت اسطوره‌ای در هندوستان نه نه, نه. اون معنی یکی دیگه ولی اون با خود معنو... دنیا در این شیوه صحبت می‌کره ما اون حالا درمی‌ییم که یک پروسه علمی رو میدونستن حالا رو میدونستن نمی‌دونستان کیومرسن بس می‌دوننن این بوده این دو به هم ارتباطی میشه... نداره مثلا شما فرقه ای نقاسی انسان رو کیومرس می‌دونسته هم هست حاکمیت دولتی اینطوری فکر کرده. بسلوا و همون آقا همون حاکمیت دولتی مغا بودن و همین حسورا رو نوشتن حاکمیت دولتی اوستا رو که ننویسن که حاکمیت دولتی به دوران ساسانی شواهد ما این تفسیر با ما این شکلی اجازه بدن من نمی‌تونم بگم حاکمیت هخامنشی میتونه این کارو کنه ولی حاکمیت ساسانی با این سکه اگه سکه دولتی باشه حکومتی باشه به معنی شون حاکمیت دولتی به اون دوره تازه نه کل ساسانی به اون دوره فکر میکردید کیون از نو قصه انسانی ببینید همین اصلا همچین چیزی نیست این از قدیم بوده. من بوده شاهد نداریم این دیگه از این شاهد من بهتر نمیتونم بیارم بررسی کتابی هست من معرفی میکنم دکتر چنگیز مولایی کتاب بررسی فروردین یشته کاملا همه اینا رو توضیح میده بسالیله خودشون توضیح میدن اینکه اثبات نیست شما مثلا یه سکه از اسکر سهم پیرا کنین تا مثلا فلسفه شو به ادش بابا رప్తి نداره ما 1700 سال پیش شما, شما, شما یه سکه اگر دولتی باشه یک یعنی یک مثلا شورشگر نزاده باشه یه آدمی یه جایی نزاده باشه سکه باشه دولتی باشه خیلی فلان. غیر علمی این میشه دقیقاً ببین اون سکه به دوران ساسانی به اون دوره ساسانی حاکمیت فکر میکنید این بود تو هزار سال دیگه هم. به دوران آریوش اخ... اینطور نبود به دوران یک پادشاه قبلی ما سر نمیکنیم اینطور باشه. تو هزار سال دیگه هم. از قبات انوشیووان یک پادشاه فاصله خب پدر و پسر او مزکی فکر میکرد این قریشترکی فکر میکرد ببینید اینا دیگه بازیه ببقید. بازی نیست ببینید این ج... قضیه که به ایران با ایرانیان باسه همیشه و یک طرفه است به یک موضوع تعمیم میدن به یک جایی که سر و تاش ناشناخته است این چه ربطی داره, داره. دارم... ایران شناسی ایران ها... در یونان در یونانی شناسی ما چندی مکتب داریم هر مکتبی دارن جدا بررسی میکنن اجازه نمیدن بگن یونانی اینا... باستان اینطور فکر میکرد. یکی یکم اینها... مکاتب یونان باستان ببینید اینها تا زمان جمشید با هم که بودند جمشیدو داشتند و آقای کریستینسن کاملا درست این سلیقه ای نه کاملا درست شاهد باستان شناسی نداره شاهد باستان شناسی اون اون ما نداریم نداره دیگه بیا اگر هندوستان داره به شما نوشته نه شما نوشته ی شما داره که اگر من دهندوستان... اند... ها از جمشید جدا شده نداریم که خب این داره میگه که آقا اصلا هر جور نه اینکه در این شناسی به هم نداریم اصلا ما هیچ نداریم خب بیا ما بگید آقا هوشنگ تهمورس فراواک مشی مشیانه گاوی یکتا دا داده در هندوستان کجاست خب عرض کردم دیگه هم اتفاق من شاید حدس میزنم که همون اتفاق افتاده ولی شما شاهدی ندارید شا... شما شا... سلیقه دارید آقا شما می حدس میزن اینجوری بود برای اینکه شاهد مشابهش ده ها جا دارم ]ه. که اتفاق افتاده در داخل ایران <تصفح> من دارم. یک شاهدی برای توجیه کارم دارم شما سلیقه برای توجیه کار <تصفح> دارید این فرق ماست من, من میدونید همین من... ایران شما اینو امروز داریم دیگه یعنی ما مثلا از روی چند تا شاهد میگیم که احتمالاً برای فلان امام یا فلان پادشاه این اتفاق افتاده ما خبر نداریم که ولی مثلا ما میگی من سلیقه من استاد این هست که این اتفاق افتاده اینا دو جمله متفاوته اینا دو, دو تا دیگه متفاوته از من اینجوری پیش میره من از اینجا از شنوندگان عزیز از از خواهی میکنم من خب دیگه از برنامه شرکت نمیکنم نه دیگه ببینید ایراد بحث دیگه ایراد نداره ولی اگر به عنوان زبان شناس قبول دارید من اگر... در تفسیر قبول داریم من... من در تحلیل قبول نه... در... داریم اصلا نه من هیچ اصلا من حرف بزنم نتوسم چیزی بخونم من میگم خب من دوست داشتم گروه باشه ولی خب میبینم نمیشه من من خودم جدا کار میکنم ناخو یه دوری اونجوریه این که نمیشه که اینجور من اینجوری نمیتونم کار کردن که هیچ نیازی نداره ولی خب این ببینید ولی ام... آخه آخه ببینید این یه حالته که وجود داره بعد این خواهد ما یه تا قبول دارید سلیقه صحبت کردن و و و اون موضوع دوم که گفتن رو شاهد صحبت کردن و معقوله جدا می‌گی دو واحد بهتره ببینید اون یکی که فاک نکنید ببنید. ببنید. یه من نق... اونجا نقدی که بیان نذاتخویی میکنم. یه نقدی که به شما وارد هست شما از هر چیز رو می‌خواید با زبان شناسی اثبات کنید خیلی ببینید ما قرار شد گروه بذاریم بله هر کی با علم خودش من زبان شناسم بله من چون یک گروه پزشکی کمیسیون پزشکی میگه آقا بی آقا بسنجید میگه آقا این متخصص ستون فقرات آقا متخصص چشماتون متخصص ستون فقرات آقا علوم انسانی نه پس نسنجید آقا بس اگر ما اگر نمیخواید من من نمیتونم اینجوری کار کنم واو نمیشه که ببینید نه نه نه, نه, نه. ببینید من اینجا معذرتخایی می‌کنم میکنم من خیلی دیرم وصلت بود ولی خب من الان اصلا هیچی نمیتونم بخونم من واقای ارامر یه جوری و در واکام اینجا یه جور ب... اگر میگید آقا بیایید برای ما بگید من دارم میگم آقا فعل من دارم به شما میگم آقا عزیز من من نمیتونم برم همه دشمن‌ها بدن کی چه همه کی گفتم این طور گفته من مشکل پیدا می‌کنم. شما می‌گید این تو این دهه اتفاق گفته دوره بودن. من دارم میگم آقا شما اصلا تبری رو با مثلا با کی می‌خواید مقایسه کنید؟ این آقا ببین من پاسردم می‌خوام این من هزاران بار گفتم این پاسردم می‌خواد مقاله کنید برید بدید به دانشگاه. تحلیل نسبه تبری نه... اشتباهه. من... ببین... این عرض کردم. وگرنه همین مثل مثل مثل کار پانتورکا. می‌گن آقا همین که ما می‌گیم می‌خواید می‌خواید می‌خواید نخواهید. آقا اینو باید تایید کنن. من اینو بخوام شما هم دقیقه همین دیگه همین دیگه. ببین تبری ببین من تایید می‌گم دارم به زبانشناس سعید میگم شما اشتباه خوندی اشا خبری اصلا دیده شما رو نداشته اصلا نمیشه زبانشناسی چیه خب آقا چون دو روز چون این دو دو دو دو دو نداشته اون, اون بس... یک رو فرض کرده که این مار نمیتونه باشه این مار قدس باشه وقتی اوستا برای مار بنویسه مار قدس آقا من دارم میگم وقتی بلد نیست چرا دخالت کرده اون دوره این چی این دغدغه ها نبوده اصلا اگر نبوده پس اون اونو قرار میدین آقا این آقا من میگم من دارم میگم اقتصادی داره من دارم میگم <تصفيق> اصلا آقا جوش صحبت ها... جوش چرکین در اوستایی اصلا جوش گوشتی و جوش چرکین جوش کلم... نبوده این کلمه داره آخه آخه عمو عمو این دلیل نمیشه اون وقت خوش... من میام حالا قرار دادن بوته های خشک رز اینا بوته های خشکیم هستن و کم تکرار میشه در انسان های باستانی که جامعه‌ای نبودن که این بیان گزارشش کن، ثبتش کنن من میگم فا اینا فلج ا فلان نمیشناختن ولی خب در ایران خیلی فایده نداره تا اون رو هم نمیشناختم مانند متون باستانیمون تا اون ندیم تا اون ایران اومده بدون ساسانی بدون شیروی اومده بدون دران عشقانی تا اون مارد عوضت هم ندید در موتون پهلاوی هم نذارید دلیل از نمیشه هرگز اون قدوی گوشی روش نبوده بخوان بخوان او او او او یه وقت فرضش رو بگیم ما بچی بودی فرض دیگه یه فرض ما ما میلیون ها فرض بزنیم آقا فرض ما هم باید چارشوب داشته باشی یا نه چارشوب داره چه چارشوب... فرز... چ... چارشوبی داره, داره. فرزش... داره دو قته‌ایه که الان در گوگل آدمایی که همین بیماری داره همین الان بریم سرچ کنیم فرضی که اویس که اویسا بیماری اویسا کلمه جوش جوش الان الان برعکس تا اون علیا بس با اینکه دو با... یه بار تا من دارم من دارم میگم این اجی که آقا داره میگه میگه گوشتی به هیچ عنوان نیست اون اصلا رو نمیشناخته طبرسیان که عجی رو نمیشناخته اون میگه ماره دوتا ماره خب اون وقت شما دید خراب میکنید خراب نمیشه این آدم شب شب خراب بشی خیلی قشنگ نبوده میخواد یه سند من پس برم پیش مثلا دکتر مثلا حسن خدای واژه‌شناس ایران بگم آقا این فرق گل و نمیدونسته چیه بعد گفتین خدای گیل بوده چون تو گیل نبوده منم بعد از ما رفتی نداره آقا همش همینه هیچ من... رفتی نداشتن من من اگر می من این من اینو بودم امروز روزم برای آقای ایران مرطالبه مو و باسن... ایران برنامه بعدی هستن نه من خب دیگه هم گفتم شکایت نمی کنم خب و... آقا قضایی بعد تحلیل بشن ببینیم بعد قد... از تحلیل ندار فرار قضیه با تحلیل بشه اگر اجازه قضیه شما تحلیل برای, نشه... برای پنج... هفت دقیقه من از برنامه گذشت شما تو برنامه نایت نایت ادامه شما منگانی من <تصفيق> سانسور کنید نه هم که اصلا نه چیزی خدای سانسور نکنه عداقت به احترام دوستی چند وقت هم من که من که من تو ادیت برنامه نقشی ندارم نه حالا بهش بگی دیگه امید شما تا آغاز قسمت تا Come on.